rein mal قبائل. انتخاب تموچین به عنوان خان در سال 1183 میلادی او را رهبر همه مغولان نساخت اکثر قبایل مغول و قدرت منترین قبایل در میان آنها ماننده تایجیوت، انگیرات و آرولات از جاموغ پشتیبانی می کردن. ولی تموچین که در آن هنگام 34 سال داشت قصد داشت از قدرت عنوان تازه اش برای تحقق رؤیای حکومت بر تمامی قوم مغل استفاده کند. هرچند تموچین رهبر تنها چند قبیله مغل بود، منصب جدید خود را به نحوی بسیار جدی به دست گرفت و به شیوه های بی سابقه شروع به سازماندهی پیروبان خود کرد. پیش از آن مغلان فاقد هر گونه تشکیلات اجتماعی بودند. ولی تموچین پیروان خود را به گروه هایی تقسیم کرد که دارای وظایف خاصی نسبت به جامعه بودند. او بعضی از افراد را احددار تدارو که غذا و نوشیدنی برای ارتش خود نمود. در حالی که دیگران به پیک ها، تعلیم دهندگان اسبان، رمداران، شمشیرزنان، تیرندازان، اداره کنندگان بردگان، خدمتکاران و مراقبان گاری های حمل خیمه ها تقسیم شدند. او برای هر اردو افسر فرماندهی را تغییر کرد و این مناسب عالی پاداش آن دست از پیروانی بود که از ابتدا در کنار او قرار گرفته بودند همچنین شماری از جوانان وفادار مسلح به تیر و کمان را به عنوان محافظان خود تغییر کرد تموچین چاپلوسی و پاداش دادن به حامیان وفادار را به یک رسم تبدیل کرد اما با کسانی که اعتمادش را سلب می کردند با بیرحمی کامل رفتار می کرد جاموغه جنگجو تغرول از اینکه یکی از تابعان او به منصب خان انتخاب شده بود خوشنود گردید اما جاموغه خشمگین بود کمی پس از انتخاب تموچین یکی از مردان قبیله جاموغه چند اسب متعلق به ازوی از قبیله جلایر را که به تموچین پیوسته بود دزدید مردان قبیله جلایر دست به حمله انتقامی زدن و یکی از پیروان جاموغه را به قتل رساندند. این واقع بهانه به دست جاموغه داد تا به تموچین اعلان جنگ کند. سی هزار جنگجوی گردآوری شده از چهارده قبیله به تموچین حمله کردند و او با نیروی کمتری که از سیزده اردو گرد آمده بودند به مقابل پرداخت. قوای جاموغه تموچین را شکست دادند و خانه جدید مجبور به پناه بردن به گذرگاه باری که جرن نزدیک قسمت اولیای رود اونون گردید جاموغه اجازه داد تا تموچین بگریزد اما بیشتر پیروان تموچین را که اسیر شده بودند به قتل رساند. بقیه اسیران را در هفته دیگه بزرگ جوشاندند تا مردند این کار یک شیوه معمول اعدام بود و گمان میرفت به این شکل از بقای روح قربانی و انتقام گرفتن او پس از مرگ جلوگیری می شود. جاموغه همچنین سرهای دو از از رؤسای کشته شده ی تموچین را به دم اسب خود بست. تموچین پس از شکست مجبور شد دره اونون را ترک کند و دوباره در نقطه دورتر در جنوب نزدیک توغرل در دره رود کرولن اقامت کند. و در آنجا با وجود شکست تحقیرآمیز خود به گردآوری پیروان ادامه داد وی از هدف خود یعنی حکومت بر دشت پهناور دست نکشید اما هنوز قدرت کافی برای پیروزی بر دشمنان را نداشت با وجود این چهار جنگ سرنوشت او را دگرگون کرد اتحادهای ناپایدار در حدود سال 1198 میلادی که چین شمالی مورد حمله قبایل تاتار قرار گرفت چینیان اقدام به لشکرکشی کردند که رئیس تاتارها را وادار به عقب به دره اولجا در مغولستان نمود تغرول و تموچین که مشتاق اتحاد با چینیان بودند از این فرصت برای قتل عام اردوی شکست خوردی تاتار استفاده کردند چینیان در مقابل امتیازاتی در تجارت مرزی برای کاله های چینی به تموچین و تغرل اعتا کردند این پاداش خاص از سوی چینیان این تصور را ایجاد کرد که تموچین و تغرل هم پیمان چینیان هستند این هم پیمانی فرضی باعث ایجاد ترس در گروه های قبیله دیگر شد و آنها برای حفظ خود دوباره پیرامون جاموغ گرد آمدند در نتیجه جاموغه پیروان بسیاری را جلب کرد و تموچین دیگر از حمایت اکثریت برخوردار نبود. در سال هزار میلادی رو همه همیه گروه های غبیری به رهبری جاموغه که او را خان خود اعلام کرده بودند با قوای تموچین و تغرول به نبرد پرداختند. در این نبرد جاموغه شکست خورد اما جان به در در میان کسانی که تموچین آنان قلبه کرد، تاجیک ها و گروه های باقی تاتار نیز حضور داشتند. سپاه گردآوری آوری شده تموچین افراد زنده مانده سپاه دشمن را جزب کرد و به این شکل موجودیت آن قبایل به عنوان واحد های قابل تشخیص خاتمه یافت. تموچین غالبا پیروزی های خود را با جذب مقلوبان در اردوی مغول کامل می کرد. هرچند اتحاد تغرل و تموچین منجر به پیروزی هر دوی آنان گردیده بود، این امر سانگم، پسر تغرول را مسترب کرد. سانگم به دلیل حراس از قدرتی که تموچین فراهم آورده بود، او را تهدیدی برای آینده خود به شمار می آورد. او توانست پدرش را متقاعد سازد تا برای جلوگیری از افسایش قدرت تموچین کاری کند، در سال 1203 میلادی این اتحاد نیرومند به همخورد و تغرل و پسرش به تموجین حمله کردند. آنها اردوی او را مورد هجوم قرار دادند. تموجین که از محافظان خود دور بود، غافلگیر شد و قوایش تا ر و مار شدند. تموجین در دل شب به زحمت از میدان جنگ گریخت. در همان سال تموجین و افرادش بار دیگر گرد هم آمدند. و به شکلی غافلگیرانه به اردوی تغرل حمله کردند. تموچین از نبرد پیروز بیرون آمد تا فرمان روای مغلوبان شود. نایمنها تموچین می‌داند که پیش از آنکه بتواند همه قبایل دشت پهناور را به صورت واحد درآورد، یک جنگ دیگر در پیش دارد بعضی از فراریان قبایل مغلوب برای مقابل با تموچین به آخرین قدرت با یعنی قبیله نایمان پیوستند نایمان ها که از ریشه ترک بودند و به آین بودا اعتقاد داشتند دشمنان دیرین قبایل مقل به شمار می آمدند جاموغه در واپسین تلاش برای رهایی از گزند تموچین و شکست دادن او با شاه نایمان ها متحد شده بود و به همراه او مشغول توته چینی برای ساقت کردن تموچین بود. هیچ یک از این دو برای انجام حرکتی شتاب زده اطمینان کافی نداشتند و به این ترتیب هر دو طرف حدود یک سال منتظر فرصت بودند و به جمع آوری و سازماندهی و خود می پرداختند. تموچین به منظور آماد ساختن خود برای رویا روی نهایی با سپاهیان نایمان همه رؤسای قبایل تحت فرمان خود را به مجمعی فرا خاند و مدتی را به بازسازی سپاه خود گذراند. تموچین سوار نظام خود را به گروه های ده صد و هزار نفره تقسیم کرد ده جنگجوی سواره یک جوخه را تشکیل می و ده جوخه یک دسته را یک غران نیز از ده دسته تشکیل می که متشکل از هزار نفر بود و ده غران یک تومان متشکل از ده هزار سوار را تشکیل میدادند. سوار نظام سواک اسلحه سلاح های پرتابی با خود داشتند در حالی که سوار نظام سنگین اسلحه برای جنگ تن به تن مجهز شده بودند تمرین های روزمره و حمله های تمرینی به مردان می آموخت که چگونه فرمانها را اجرا کنند و چگونه به صورت واحدها حرکت کنند غرانها را بهترین جنگ فرماندهی میکردند جنگجویانی که مطیع کامل تموچین بودند کوچنشینان دشت پهناور به طور سنتی از داخل دایره ی از گاری ها به جنگ دفاعی می پرداختند. ولی تموچین نقشه جنگی جدیدی را تحریزی کرد به این ترتیب که سربازان پیاده سنگین اسلحه که در ردیف طویل موزه می پشت سوار نظام سواک اسلحه قرار می و در پشت سربازان پیاده سنگین اسلحه سوار نظام سنگین اسلحه منتظر می تا از زفت در صف دشمن استفاده کنند یا دشمن در حال اغب نشینی را به ستوخ آورد. غرانها یا گروه های هزار نفره در محیطی به پهنای صد مرد و عمق ده مرد قرار می گرفتند. هنگامی که دشمن پیش می سربازان سواره می به پیش بتازند و رگباری از تیرها را پرتاب کنند. و سپس باز گردند تا سربازان پیاده پیشرو کنند. این واحد های پیاده نظام به خوبی مسلح بودند و تبر سنگین و شمشیر داشتند. پس از آنکه سوار نظام سوک اصللح دشمن را دچار آشفتگی می ساخت، سربازان پیاده و سوار نظام سنگین لح دشمن از هم پااشیده را از پای در میآوردند فقط زنان و کودکان می بایست در جای دور و عقب در داخل دایره ای از گاری ها قرار می گرفتند. نبرد آغاز می شود تموچین پس از افراشتن درفش های جنگ در روز جشن ماه در سال 1204 میلادی که سال موش بود با سپاه خود به طرف قلمرو نایمان ها که در مجاورت غلمروه او قرار داشت حرکت کرد. هنگامی که مقالان به اردوی دشمن نزدیک شدند عصبهایشان از رمق افتاده بودند جاسوسان تموچین نیز گزارش دادند که سپاه نایمان ها بسیار افزون تر از سپاه آنان است تموچین ترجیح داد اردو بزند و به عصبها استراح دهد او طبق نقشی یکی از فرمانده هانش فرمان داد صدها آتش بیش از حد لزوم بیافروزند. این حرکت نایمان ها را فریب داد و آنها گمان کردند که با سپاهی بسیار بزرگ روبرو رو هستند سرانجام هنگامی که دونی رو به جنگ پرداختند جاموغه با مشاهده تدابیر پیشرفته سربازان تموچین به سرعت میدان جنگ را ترک کرد جاموغه هم از سپاه سازمان یافته ی تموچین ترسید و هم نمی که می به افرادش در کنار نایمان که دشمنان غدیمیشان به شمار می امیدوار باشد یا نه سپاه نایمان ها که به دلیل رفتن متحد خود دلسرد شده بودند در زیر فشار قوای تموچین از پایی در آمد. شاه نایمان ها در جنگ کشته شد و پسرش برای اجتناب از اصارت فرار کرد بنابرا نوشته تاریخ سری به این ترتیب چنگیز خان در دامنی کوهای آلتایی به موجودیت ملت نایمان خاتمه داد و این ملت را از آن خود ساخت. جاموغه پس از فرار خود را پنهان کرد ولی سرانجام به دست مغولان اسیر شد. اگرچه تموچین همواره با رغبای خود بیرحمانه رفتار می کرد اما جاموغه دوست و آندای کودکی او بود. در فرهنگ مغلان کشتن آندا هول از برادر کشی بود. تموچین در گفتگوی پایانی خود با جاموغه از او خواهش کرد که بار دیگر دوست او باشد. جاموغه معتقد بود که این کار غیر ممکن است. انگامی که میبایست دوست خوبی باشم دوستتون نبودم. اکنون دوست من تو اقوام این سرزمین را آرام و سرزمین های بیگانه را متحد نموده ای. تخت اعلای سلطنت از آن توست. بنابرای افثانه ها جاموغه درخواست کرد اعدامش کنند. دگرگونی موازنه قدرت جنگ های میان تموچین و حریفان او به ساختار قدرت در دشت پهناور نظمی کاملا جدید داد. در این زمان با رفع تمامی دشمنی های مهم از طریق نبرد و جذب قبایل، ایالت قبیل دشت پهناور تحت یک حکومت عالی در زیر سلطه تموچین رهبر مغلال تشکیل شد این وحدت قبایل دشت پهناور نتایجی گسترده داشت